24. برای رهگذران هیچ چیز به اندازه دیدن مردی با صندلی چرخدار که التماس زنی را می کند که زاهرا پرستارش است ناراحت کننده نیست در چنین مواقعی همیشه طرف فرد توانخوااه را میگیرند خصوصا اگر کسی باشد که نتواند حرکت کند کسی که آرام دارد می گوید کلرک بیا اینجا لطفا اما قادر نبودم قادر نبودم نگاهش کنم. نیتن وسایل فیل را جمع کرد صبح روز بعد هر دو نفرشان را در سالن هتل دیدم نیتن هنوز از خماری شب قبل بیرون نیامده بود از لحظه ای که دوباره کنار هم قرار گرفتیم از هر گونه کمک به ویل خودداری کردم احساس درماندگی و خشم میکردم صدای قاطع و خشبگینی در درونم به من نهیب میزد که اتل امکان از ویل دور باشم برگرد خانه و دیگر هرگز که نبین نیتن پشت سرم ظاهر شد و گفت خوبی؟ به محض ورود من به فرودگاه از آنها جدا شدم و به قسمت تفیل بار رفتم بلکن نمیخوام در موردش حرف بزنم خماری صوبگاهی؟ نه سکوت کوتاهی برقرار شد یک بار قیافش محسون شد فکرم درست داره؟ تصمیمشو گرفته؟ قادر به حرف زدن نبودم به نیت نگاه کردم که آروارش زفت شد به هر حال قوی تر از من بود هرفهی بود دقایقی بعد که با ویل برگشت داشت چیزی را که در مجله دیده بود نشان ویل می داد. از تیم فوتبالی که هر دو می حرف می زد. اگر کسی آنها را می دید باورش نمی شد نیتن دقایقی قبل خبر به این مهمی را دریافت کرده باشد. کل زمانی که در سالان انتظار بودیم خودم را سرگرم کردم. صد تا کار بود که می توانستم انجام بدم. برچسبه چمدان ها را بزنم، قهوه بخرم، روزنامه ورق بزنم، دستشویی بروم. همه این کارها بدن معنا بود که مجبور نیستم نگاهش کنم، نمیخواستم با او حرف بزنم. اما هر از گاهی نیتن بش میزد و منو ویل تنها میماندیم. کنار هم نشسته بودیم و فاصله اندک بین ما پر بود از تهمت که ساکت و خاموش به هم میزدیم. ویل بالاخره به حرف آمد کلارک حرفش را قطع کردم نمیخوام نمیخوام با حرف بزنم از خودم تعجب می کردم که چطور می توانم چون این رفتاری داشته باشم احتمالاً کادر پرواز را هم به تعجب انداخته بودم وقتی توی هواپیما بودیم میدیدم با هم پچ بشی که چطور از ویل فاصله می یک گوشی به گوشم است یا مصمم به بیرون پنجره چشم می اولین بار بود که عصبانی نمیشد کنایه نمیزد. اولش ساکت بود. بعد چند کلمه ای حرف زد. نیتنه بیچاره بود که باید زورش را میزد تا مکالمه ادامه پیدا کند. از چای و قهوه می پرسید یا سرش را با پاکت بادام زمینی بوداده گرم می کرد. گاهی هم اصخایی می کرد و از کنار من رد می شد و به دستشویی می رفت. حتما رفتارم کودکانه به نظر می رسید. بلی اصلا ماهم نبود. تحملش را نداشتم. نمی توانستم تحمل کنم که از دستش بدهم. خیلی یک دنده بود و مصمم که مثبتها را نبیند. نمی خواست قبول کند که چیزهای خوبی هم می تواند وجود داشته باشد. قصد تغییر عقیده نداشت نمیتوانستم توانستم بپذیرم که کارش را در آن تاریخ عملی کند وحی منزل که نبود یک میلیون جر رو از توی سرم میپیچید چرا برایت کافی نیست؟ چرا برایت کافی نیستم؟ چرا به من اعتماد نمی کنی؟ اگر فرصت بیشتری داشته باشیم شریع تغییر نمی کند؟ هر نگاهم به دست برون زشت میافتاد به آن ناخونهای چهارگوش که فقط چند سانتیمتر از دست من فاصله داشتند. و یادم میآمد که چطور دستمان در هم میپیچید. گرمای بدنش را به خاطر میآوردم. با اینکه حرکت نداشت باز هم او را یک جورایی قدرتمند میدیدم. بغز چنان راه گلویم را بسته بود که دیدم نمیتوانم تحمل کنم. باید میرفتم دستشویی؟ و روی کاسهش خم می و زیر نور محتابی هقه گریه می کردم. وقتی به کاری که ویل قصد انجامش را داشت فکر می کردم خودم را کنترل میکردم، جیغ نزنم. حس می یک جورایی اقلم را از دست دادم. دلم میخواست همانجا روی صندلی هواپیما بنشینم و زار زار گریه کنم تا کسی بیاید. بیاید و قول دهد که او این کار نمی کنم. گذشته از اینکه رفتارم بچگانه بود و کاتر پرواز چون این تصوری نسبت به من داشت. چون از صحبت با ویل خودداری می کردم. نگاهش نمی کردم و قضا نمی دادم. انگار زنگ زن دنیا بودم. اما بی اتنای من به او و اینکه وانمود کنم اصلا حضور ندارد تنها راه تحمل این ساعاتی بود که به اجبار کنارش بودم. اگر فکر می کردم که نیتن به تنهایی قادر است از پس همه چیز برایت صادقانه بگویم پروازم را تغییر می دادم می رفتم و خودم را گم و گور می کردم این که بین ما یک قاره فاصله باشد دلم نمی خواست کنار دستم بنشیند. هر مرد خوابیدند و من خلابیم صفحه هر چند مختصر در فشاری که تحمل می کردم ایجاد شده بود. به صفحه تلویزیون زل زدم و هرچه و پیما به وطن نزدیکتر می شد. قلبم بیشتر به درد می آمد و خشمم امیغتر می شد. کم کم به ذهنم رسید که این شکست فقط مرا از پادر نمی آورد. بلکه والدین ویل هم نابود می شدند. احتمالا سرزنشم می کردم. خواهر ویل لابد از دستم شکایت می از پس ویل بر نیومده بودم نتوانسته بودم متقاعدش کنم هر چیزی که می توانستم به او تقدیم کرده بودم از جمله خودم و هیچیک از چیزهایی که داده بودم نتوانست متقاعدش کند و انگیزه ی زنده ماندن بدهد با خودم فکر می کردم شاید حقش کسی بهتر از من است کسی باهوشتر کسی مثل ترینا بهتر میدانست چه کند. شاید می به اطلاعات پزشکی خاصی دست پیدا کند. یا چیزی که بتواند به ویل کمک کند. شاید می توانست را رو تغییر دهد. این واقعیت که باقی عمرم را باید با این فکر رو خیال سپری کنم دیوانم می کرد. صدای ویل مرا از افکارم بیرون آورد. این نوشیدنی میخوای؟ نه ممنونم. آرنجم زیادی روی دسته‌ی صندلی توه؟ نه. خوبه. فقط در اواخر پرواز بود که به خودم اجازه دادم وسعتان تاریکی نگاهش کنه. نگاهم آرام آرام تغییر مسیر داد و از صفحه روشن تلویزیون دور شد. در نور ضعیف هواپیما دزدکی به او چشم دوختم. وقتی نگاهم به صورت برونز و زیبایش افتاد که آرام و متین خفته بود قطره اشک از گوشه چشمم به روی گونه قلتید شاید در آن لحظات حساسی که موش نگاهش میکردم تکانی خورده بود ولی بیدار نشد دور از نگاه مهمانداران و نیتن پتورا تا گردنش کشیدم و با دقت دورش پیچیدم تا سرمایه دستگاه تهویه مطبوع اذیتش نکنم نکند جلوی در ورودی منتظرمان بودند. یک جورایی می که میآیند. وقتی داشتیم صندلی چرخدار ویل را در بخش کنترل گذرنامه میراندیم بقای درونم هر لحظه بیشتر میشد و سر, و سر وجودم را فرا می گرفت. یکی از کارکنان با خیل خواهی تمام ما را از راه میان برد. بور ولی من دعا می کردم زمان به این سرعت سپری نشود و ما ساعت و حتی روزها در صف بمانیم. ولی نه؟ همینطور که من چرخ دستی چمدانها را حل می دادم و نیتن صندلی چرخدار را می راند از روی کف لین سالن لیوم گذشتیم. همین که در شیشهای باز شد، آنها را دیدیم. آنجا پشت حسار ایستاده بودند، کنار هم، و به ظاهر هم دل و متحد. چشم خانم ترینر را دیدم که با دیدن ویل برق مختصری زد، و من با حواظ پرتی با خودم فکر کردم البته. البته که ظاهرا خوب به نظر می رسد. در نهایت شرمندگی عینک آفتابی به چشم زدم. نه برای اینکه خستگی ام را پنهان کنم. بلکه چون نمیخواستم فوری از قیافه درماندم چیزی دستگیره شود و چیزی را که مجبور بودم بگویم حدس بزند. خانم ترینر با صدای بلند گفت: «نگاش کن، ویل چه عالی شدی؟ خیلی، خیلی پدر فیل گوز کرده بود صورتش قرق در لبخند بود دستی روی صندلی چرخ داره پسرش کشید و بعد روی زانویش گفت وقتی نیتن گفت که از روز میری ساحل و شنا کنی باورمون نمی آب چطور بود؟ گرم اومد بود ها؟ اینجا چنان بارون اومد که انگار سخف آسمون پاره شد از اون بارونای ماه اوت نیتن دائما برایشان پیام میفرستاد یا زنگ میزد با اینکه همراه ما نبودند ولی در جریان تمام کارهای ما بودند نیتن گفت جای فوقالعادهای بود بینظیر در این در روز گذشته نیتن هم به آرامش رسیده بود ولی حالا میکوشید لبخند در لب داشته باشد و همان نیتن سابق به نظر بیاید حس می کردم تمام وجودم یخ زده است چنان گذرنامه را محکم گرفته بودم که انگار داشتم به سفر دیگری میرفتم حتی نفس کشیدن یادم رفته بود پدر ویل گفت فکر کردیم امشب دوست دارید شام مخصوص بخورید رستوران محشر و درجه یکی توی اینترکانتیننتال هست نظرت چیه؟ من و مادرت که فکر کردیم خوش میگذره ویل گفت بطمئن به مادرش لبخند میزد خانوم ترینر هم نگاهش می کرد. اما طوری که انگار واهمه داشت دلم میخواست سر ویل فریاد بکشم که چطور میتوانی چطور میتوانی اینطور نگاهش کنی وقتی میدانی میخواهی با او چه کنی بیاید توی پارکینگ توانخواهان پارک کردم فاصلش تا اینجا کمه مطمئن بودم که از پرواز خسته اید ناتن، میخوای کمکت کنم چمدون‌ها رو بیاریم؟ وسط پریدم و گفتم: من داشتم چمدانم را از چرخ دستی بیرون میکشیدم من که از همین راه میرم. به هر ممنونم. خودم را با چمدانم سرگرم کرده بودم و امدن نگاهشان نمیکردم اما با وجود هم همه ای که در سالان پیچیده بود می توانستم سکوتی را که با حرفم ایجاد شده بود حس کنم صدای آقای ترینر جلوتر از همه سکوت را شکست لویزا دست بردار بیا جشن میگیریم یه جشن کوچولو می از سیر تا پیاز سفر رو برامون تعریف کنید ما فصلن از جزیره بگید قول میدم مجبورت نکنیم همین چیز تعریف کنی همینطور هم با دهان بسته ده صدای خانم ترینر کمی عصبی بود. گفت آره لویزا بیا. آب دهانم را قورد دادم. سعی کردم لبخند کوچکی هم که شده بزنم. چشمانم پشت در حفاظ بودند. نه ممنونم. واقعا باید برگردم. ویل گفت کجا؟ میفهمیدم چه میگوید. واقعا جایی برای رفتن نداشتم. میرم خونه پدر و مادرم. مشکلی نیست. فیل گفت. بیا باما. آهنگ صدایش آرام بود. کلارک. نرو لطفا. میخواستم گریه کنم. میدانستم توانش را ندارم که نرش باشم. نه ممنون شبت خوش بگذره کیفم را روی شانه انداختم و پیش از اینکه کسی فرصت حرف زدن بیابد راه افتادم و لابلای جمعیت داخل سالان گم شدم تازه به ایستگاه اتوبوس رسیده بودم که صدایش را شنیدم پاشنهی کفش خانم ترینر روی پیاده رو روتقتق صدا کرد کمی راه میرفت و کمی میدوید لویزا صبر كن لطفان بایست برگشتم دیدم که دارد راهش را به زور از لای جمعیت باز می کند. به نوجوانان کوله به پشت تنه میزد و موج جمعیت را میشکافت نور چراغ فرودگاه روی موهایش افتاده و رنگش را مسی کرده بود شال خاکستری قشنگی به طرز هنرمندانه روی شانهش بود یادم میآید ناخداگاه با خودم فکر کردم لابد تا همین چند سال پیش زن زیبایی بود صبر کن، لطفان صبر کن ایستادم و به پشت سرم به خیابان نگاه کردم. آرزو می کردم کاش همین الان سر و کله اتوبوس پیدا می شد. سوارم می کرد و با خودش می برد. یا اتفاقی رخ می داد. کاش زلدله کوچکی رخ می داد. لویزا بهش خوش گذشت. با هنگ صدایم قاطع بود. با خودم فکر کردم چه عجیب. درست عین صدای خودش. توی پیاده رو ایستاده و به من زل زده بود. ظاهرا که خوبه خیلی خوب رغم موج جمعیتی که اطرافش در حرکت بود یک بار بیرکتی اد هر دو ساکت بودیم و چیزی نمی و بعد من گفتم خانم ترینر من دیگه سر کار نمیام من نمیتونم. نمیتونم این روزای آخر و سر کار بیام هیچ پولی هم از شما طلب ندارم در حقیقت حقوق این ماه همو نمیخوام هیچ چیز نمیخوام من فقط رنگ از صورتش پرید دیدم که رنگ از چهرش رفت و زیر نور خورشید صبحگاهی اندکی تکان خورد آقای ترینر را دیدم که دنبالش آمده بود با چابکی قدم های بلند بر و با دست کلاه حسیری را روی سرش محکم گرفته بود. همینطور که به زور راهش را از میان جمعیت باز می‌کرد، زیر لب ازخواهی می کرد. چشمش به من و زنش ثابت بود که به فاصله چند قدم از هم ایستاده بودیم. تو گفته؟ گفته که فکر می بهش خوش گذشته، تو گفتی که خیال میکنی تغییر عقیده داده در مانده به نظر میرسید گویی داشت التماس هم میکرد چیز دیگری بگویم حرف دیگری بزنم و خبر خوبی به او بدم قادر به حرف زدن نبودم ماتم برده بود و او را نگاه میکردم ها کاری که توانستم بکنم این بود که آرام سرم را به علامت منفی تکان بدهم. نجوا کردم. شرمندم. چنان آهسته به زبان آفردم که نباید شنیده باشد. وقتی از حال رفت آقای ترینر هم دیگر رسیده بود. گویی پاهایش زیر بدنش نبودن. دست چپ آقای ترینر جلو رفت و او را گرفت اوه بزرگی از دهان خانم ترینر خارج شد و بدنش روی آقای ترینر افتاد کلاه آقای ترینر افتاد کف خیابان نگاهی به من کرد ما تو مبود به نظر می رسید سردرگم که چه اتفاقی رخ داده است من قادر به دیدن آنها نبوده بی حس و کرخ برگشتم و راه افتادم یک پایم جلوتر از آن یکی بود و بی اختیار حرکت می کردند و از فرودگاه دور می شدند هنوز نمیدانستم کجا